حکایت یکی از پادشاهان پیشین در رعایت ممرکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی لاجرم دشمنی سب رو نهاد همه پشت بدادند جدارند گنج از سپاهی دریق دریق آگه است بردن به تیغ یکی را از آنان که قدر کردند با من دم دوستی بود، ملامت کردم و گفتم دونست و بی سپاس و سفله و شناس که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالها در نوردد، گفت بکرم معذور داری شاید، که اصبم در این واقع بیجو بود و نمد زین به گرو و سلطان که به زر بر سپاهی بخیلی کند با او به جان جوان مردی نتوان کرد. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد و گرش زر ندهی سر بنهد در آدم. ازا شب آلم. یسول و و خواب البطنه یبتش و بلفرا.